بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و سلام علی اشرف الانبیانی و سید المرسلین و علی و صحبی عجمین. اما بعد ما از مسائلی که داشتیم بحث مقررات مشترک زندگی بود بحث این که ما یکیری واجباتی داریم در زندگی که باید یاد بگیریم شرق خداوند دین خداوند ما اومدیم تقریفمون همون که نماز در میریم یاد میگیریم که چطور باید چرفانی داره رکوب و سجده و آداب نماز رو یاد بگیریم باید در زندگی یک واجباتی داریم که باید بریم یاد بگیریم بعضی از مسائل باید کوتاه اومد در مقابلش نباید انسان توقع داشته باشه که با فرشته زندگی میکنه نه مردش نه زنش انساق باش داشته باشیم در تعامل من. و اینکه بدونیم که اگر می کردیم، ظلم به خودمون کردیم، ظلم تاریکی هست در روز قیامت. نیکی های همدیگر رو فراموش نکنیم. همیشه بیاد داشته باشین که هر کدوم از زن و شوهر در حق همدیگر منتهایی دارن، این مننتاها و این خوبی ها و نیکی ها نباید فراموش بشه. این مسئله بودام امروزی که شورای بیاش پایین داشت. هیچ وقت در عصبانیت نیم. حق خودمون رو بخواهم به پرهیز از اینکه حقمو رو در خش بیایم بخواهیم چه مردش چه زنش حظ احترام و نیک خنگویی چه مردش چه زنش پوشش تلویدن و تواضع اگر شرع از منافاتی که پوشش بده به خاطر عزت ما خودمونه حقوق زن با مرد با هم دیگه برابره مگر در بعضی از مسائل اونم به خاطر فروق فردی که هست ما باید قبول بکنیم نه اینکه که حالا الان ظلمه چرا به مرد خدا اجازه داره چرا مرد قوامه چرا مرد اینطوره یک سری خداوند فروغ گذاشته که ما باید در مقابل اون فروغ در مقابل اون چیزها باید ما کتاه بیاییم و بپذیریم چون قانون خداوند فکم خداونده آخرین مسئله مشترک مقربات زندگی بحث حرز اصبار زناشویی هست چه مردش چه زنش باید مسائل رو توی خونه خودش نگه بداره و بیرون نبره کوهی رو میبینید این کوه خاطره در ذهن در ما مسلمان ها زنده میکنه شاید برای غربی ها بیان کتاب بنویسن چونه به همسر خود عشق ببرزیم یک کتاب دو کتاب بخوام بنویسن نمی‌تونم برای ما مثال خوبی رو بدن میتونن یه چیز ها هست جالبه ما ازش درس میبریم استفاده میکنیم خوبه ولی خب ما یک برای خودمون یک ایده، یک اعتقاد، یک مرام خاص خودمون داریم. یک سری چیزها ما را به یاد های خوب میندازه. این کوه خاطره خوبی توی ذهن ما زنده میکنه. نمیدونم شاید تو این جمع کسانی بدونن این چه کوهیه و چه معنایی را در برگرفت و شاید هم کسانی باشن تو این جمع ندونن. کوه کیه؟ این همون فوهی که رسول الله صلی الله علیه وسلم بالا می غاری بالای اون بود ما را به کسی خدیجه ما را بیاد خدیجه می چون ما منه که اینجا سیرت درست بودیم چون خیلی ها از فاهرات گفتن که این چه خبر این آقای جوهری هی میاد از حق مرد دفاع میکنه اینجا هی اومده زن و مظلوم واقع میکنه هی نبیدارم زن باید اینطوری باشه زن با که مردان جای خودشون دارن باید به جای خودش مردا گوشمالی بشن مردان باید جای خودش نقش بشن ما اینجا بالاخره شما مخاطبی ما اومدیم مسئلاهو بکنیم ما اومدیم قوانین زندگی مقررات بگیم نیومدیم از ذهن خودمون نیامدین اشاعات فکری خودمون اون پر... اون پرتوهای ذهنی خودمون اینجا بیان تحقیق بکنیم آیات احادیث مفاهیم معانی درش هست ما میگیم و چیزی که در این روان نهفته هست، من این کتاب به تو توصیح میکنم اگر دیدید، اگر جایی گیرتون اومد، این کتاب تهیه بکنید. زن دریانست و مرد و قیانوست، این کتاب جالبیه به نظر خودم، یکی از, یکی از بهترین کتاب هایی که در این باب نوشته شده، معلفش عبدالله داوود هست. چرا؟ زن دریا و چرا مرد و این دیگه برید دنبال این بگردیم این کتاب توش بخونید که چرا این, ته، این تهوری این معلف این کتاب اینچین این حرفی زده یکی از هایی که تو بحث غار این غاره هست بحث خدیجه هست که خدیجه سروتمند بود خدیجه برای خودش بردهایی داشت خدمتگزارانی داشت ولی جالب بود که بالای این کوه خودش میرفت این کوه خیلی خسته است. من رفتم بالای این کوه واقعا خسته کننده است دو ساعت راه مسیر این بالای این کوه که مردها خسته میشن یک زن میره دنبال شوهرش میخواد خدمت به شوهرش بکنه میدونه شوهرش بالا نشسته عبادت خدا رو میکنه دوست داره به شوهرش خدمت بکنه بالای این کوه دو ساعت مسیر میره بالا میاد پایین با دوست داره عشق داره به شوهرش این معنای عشق این معنای دوست داشتنه. که رسول صل الله صلی علیه و سلم هیچ وقت از خدیجه فراموش نکرد. آیشه وقتی که دید رسول صل الله صلی الله علیه و سلم اگر بوز قربانی می، سر می‌برید و یا تقی بهش می‌ورد، می‌ورد می به وصیت خدیجه، آیشه بهش بر خورد، به غیرتش بر خورد. گفت دیگه چی ازش می‌خواد؟ یه پیرزنی که مرده دیگه. رسول صل الله صلی علیه و سلم ناراحت میشه میگه یک ماهمرو رو سرکوف زد نکوهش کرد، سر کرد. اون جانش مالش مال کرد اون فلان کرد خدیجه اینطوری کرد خدیجه اونطوری کرد هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم اون دفتری که داشت از زندگی با خدیجه هیچ وقت اون دفتر را فقط اون رابطه هم دفتری درش ندونست پیرزن بود یا لا پیرزنم نباشه هر چقدر باشه در قلب رسول الله خدیجه جایگاه خاصی داره رسول الله صلی الله علیه و سلم این خاطره را فراموش نکرد مرد میبینه حالا بعد این مثال ها بیشتر میشه من اینو میخوام بگم بحث این تو تو نیاد که خدمت به شوهر حالا من چرا غذاب پزم من چرا بچهش تربیت بکنم هیچ وقت تو تو نیاد این ذلت این خاریه من چرا به حرف شوهرم دوش بدم من چرا مثلا برم مزرد خواهی بکنم این مثال ها شما در زندگی نبوت میبینید در زندگی رسولا صلی الله علیه وسلم بحث صداک خدیجه مثلا میاد مالش و کامل در اختیار رسول الله صلی الله علیه و وسلم میذاره گاهی هم در روی رسول نا می‌گوار که تو از مال من اومدی به اینجا رسیدگی یا من بهت دادم. این معانی رو درک میکرد که شخصی که مننت میذاره انسان مال‌دوستیه، دنیا دوسته این مفهوم رو خدیجه درک میکرد بله ما در حدیث داریم رسول الله صلی الله علیه و وسلم می‌فرماند: "یا تقول الجنه من نام ولا عاق" ولا مذمن الخمس سنه فرنگ وارد بحثنا ایشان نیتی ممنون من ند من مننت میزاره من این کار کردم من اون کار کردم من تو رو به اینجا رسوندم من نمیدونم به پای تو سوختموس زودوندم من فلان کار کردم انسان نباید منت بذاره بعضی از زنا هستن که هی مننت میذارن سر شوهرشون من این کار کردم منو بعضی شوهرام نمیتون بعضی شوهرام کارتون من منت بذارسن که بحثشون شو خدمت به جای خودش بحث خدیجه ده یعنی این درس ها را به بهمون میده هیچ وقت یعنی نعمت و رسول اصلا سرکوب بزنه سرزنش بکنه در مقابل رفتارش حالا من این همه بهت میدم تو میری تو غار میشینی میری با دوستان با ابوبکر میچرخی میگردی سلام میکنی این بعضی از زنها اینطوریه اگر شوهرش رفت بیرون به گشتی گذاری دنبال دوستی و رفیقی دیگه این تشاندوجه فکری بهش دست میده. همیشه اهمیت میده به دوستات یعنی من چی قرضین جوری نبود میرفت ور سر میزد به رسول صلی الله علیه و سلم تجسس تو حالش لیستت تو چرا رفتی بازار جانا که شوهرشون بیر اومد بکونه آه کجا بودی موبایل بیار موبایل تو شب بکنم دیگه تجسس تحسس تفتیش دیگه میشه کارگاه یه کارگاهی شروع, شروع میشه بوی دهنش میکنه بوی پیرهنش میکنه لکه تو پیرهنش نگاه میکنه این لکی از کجا اومده تا از زن اینجوری حساسیت دیگه میشن یک سازمان اطلاعاتی مثل از سازمان اطلاعاتی کشورم خریتا میون فیرهانه شهرستونو بو میکنن هیچ وقت اینجوری چیزی ما در زندگی امهات المؤمنین نداریم بلکه عایشه عیشه‌ای بلند میشه که رسول با کجا داره میره میره تا قبر رسول صلی الله علیه وسلم سلم یادت رسول میاد تو سینه‌ی عایشه میگه عایشه قصه سرشه میگه جاءت شیطانو که شیطونه تو برو امهات شیطان این وسوسه است، وسواس خناس کیه؟ ابلیس است، شیطان است. چه جنن وسوسه میکنه که انسان بیاد تفتیش بکنه، تجسس بکنه، تحسس بکنه. این شیطان به خدا پناه بگیرید از دستش. این سرا ندونید که رو اون مینجونیه. اینو به خاطر خودتون میگم. زندگی خودتونه. این درسی که ما از خدیجه میگیریم، میره نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که رسول الله صلی سلام میاد میلرزه میگه زمیلونی زمیلونی من را بپیچونید من را بپوشونید میاد اون چادره که داشته داره و سلام میکنه و میاد رسولا را تفکیم میده علیه ساته و سلام زنی نبود بیاد نکوهش بکنه بیاد سرزنش بکنه بیاد سرکوف بزنه به شوهرش خودت خاصی خودت رفتی خودت تبد بودی الان ما این مثال ها در سیرت الله صلی الله علیه و سلم زیاد داریم به زرزن ها هستن شوهرشونو رو درد یعنی اگر خدا یکی بچهش بچه شو توی خونه مریض شد کل اون نکوش ها و زرزنش ها حتی بچهشو شو کتک میزنه از باب انتقام از شوهرش یه هاش دیر اومده به خونه پا تو خونه که گذاشت داره این بچه رو میزنه اون بچه رو بعد از بخت میزنه ما در زندگی نبوت ما اگر زندگی اصحاب نگاه بکنیم ام خب قصه‌ی مادر انفس شماشا شنیده باشید وقتی که بچه‌اش مرد اومد گفت که کسی نگه به ابو طلحه تدارش که به شوهرش گفت که تبع ابو طلحه نگه که بچه‌اش فوت شده اومد خودش آرایش را کرد خودش رو تزین کرد اومدن هم بستری هم کردن صبح که شد بعد گفت که نظرت چیه اگر خدا و امانتی بده خدا و امانت خودش رو پس بده نظر چیه حالا صبح شده نگفت که آه تو دیر اومدی تو نبودی یاد کل کاسی کزار را سر شوهرش خورد بکنه خیر این زن بهشتیه این پاداشش بهشتی این زن وعده بهشت داره این زن بعد میگه انا لله و انا راجع امال خداست به خدا هم بر میگرده بعد اونجا بهش خبر میده که پس بچه خدا امانت خدا بود ده. مرد همون شب هم بچه خدا بهش میده میادم پیش رسولا شکایت میکنه قصدش سنیدی دیگه بحث اینه که هی بار دوش وقتی که شوهر خسته هست از بیرون میاد غصه بدیگی غصه کار تو تلش هست میاد عصبانی شما دیگه با این کاراتون رفتارش رو چند نکنی این گفتم این درسایی که ما از سیرت میگیریم از فداکاری های صحابه میگیریم یعنی چیزهایی که اگر من, من اگر بخوام یاد از, از بکنم بخوام بهتون بگم یک مسئله و دو مسئله نیست یعنی خدیجه عبدالله علیه آنها نه تنها فداکار بود بلکه یک زن خوشبرخور یک زن باهوش و یک زن که واقعا قدر شوهرشو میدونیست مثلا وقتی که رسولان میاد نراحته از شوهرش تقدیر میکنه سپاس،, سپاس داره فتایش داره از شوهرش تعریف کردن شوهر چیز بدی نیست درسته تعریف کردن چیز بدیه ولی که وست في وجوه المادحين تراب اونجا بحثی که تو جنب ولی بین خودت و شهرتت از باب سپاس شو لا الله اللہ من یسرب الناس شو گزار خدا نکته کی از مردم تشکر نکنه بحث شو گوزی با سپاسگزاری از شوهرت خب شما نگاهو کردی در زندگی خدیج، خدیجه وقتی که حالت رو دررسو میگه میگه الله لا یغبتک الله ابدا انك لاتصل تصل الرحم می تعریف میکنه میگه هیچ وقت خوشبخت نمیده تو صلی الله الرحمن جا میدی تو فداکاری تو این کارو میتونی اون کارو میکنی م این ستایش... هیچ وقت زن نداره. هیچ وقت منفی نگرد نیست. تقصیر خودت خودت خاستی که بری خودت نمیدونم بانی نه بکن. حتی با سرزنش و نکوش این درش رو من جاش نیست هرچول جای خودش. داره. وقتش داره. اینجا وقتش نیست. این گفتم درسی که ما از سیرت می فقط اینجا من مثال نصالورددم تا اینکه به بسل بستهمون. جاده رو می بینید. این جاده خوبه که خطی توش هست. بعد از جاده هم خطی هم توش نیست شما در نظر بگیرید با ماشین میخواین رانندگی بکنید گوینامه ندارید ماشینی تو چراغ نداره هم هست جاده هم هیچ خطی تابلو هم توش نیست نظرتون چی؟ تو شب هم ماه نیست و چراغ هم نیست رانندگی به نظر تو, تو جاده هم شلوغیش ماشینی هم چراغ نداره نظرتون چی تو این رانندگی خیلی خطرناکه خیلی ترسناکه شما شب بابا پدرتون برادرتون یا شوهرتون بگید که شب یکم چراغ خاموش بکنه تو صورت. تو که میره سرت تو ماشین میره ببینید یا جوری دیگه میریدین چراغ یا بیرون از شهر هر طرفی میرید چراغ را خاموش میکنید ببینید که رانندگی چطوره تو, تو جاده ای که تاریکه خیلی وحشتناک زندگی بدون مقررات وحشتناک زن وسوسه و استرس داره که شوهر تلاقش بده خودش میدونه اگر اومد تو روی شوهرش استاد زبان درازی به قول کرد عماد هی hey, بلبلو بلبلو بلبل بلبل بل بل بل بل میدونه که این نهایت خیلی بده هی hey, دستانداز دستانداز آخر, ما آخر ماشین چپ میکنه آخر ماشین چپ خودش هم میدونه خود خودش داره ادامه میده هی hey, دستانداز داره میذاره خب دستانداز نژاد ناخرید هر چیزی مقرر ما نیومدیم اینجا از جیب خودمون بیان مقررات بذاریم راهنمای رانندگی میاد استوب میذاره اینجا استوب اینجا دیگه دستانداز مقررات شرقی ما میگیم حقوق زن حقوق مرد این چیزی نیست که من من بیام تین زکری بکنم مقررات شرقه خاصی ما را آتش بکنیم آسوده مثل که با بهترین ماشین داره رانندگی میکنیم هر چقدر درصد اهمیتت به اون راه کم شد احتمال تصادف زیاده و بیشتره انحرافت هم بیشتره اینو شما رو یاد چی میدازه؟ من رو یاد مدرسه میدازه در در در رفیقامون وقتی کتاب در بود گوشه ای کتاب اسم جسخترتو مینی نویسانی این گوشه قلب مینی شاید دخترا من اینطوری باشن مثلا نوزادی برای خودتون دارن اینو مینی می نویسه اینجا اس این مینی می نویسه اونجا جی اون مینی می ایج. هر کس برای خودش یه قلبی مینی خصوصا به زبان انگلیسی حروف انگلیسی مینی می نویسن بعضی مردم انگلیسی و زبان انگلیسی رو دوست دارن میان با این حرفا مینی می, می نویسن خصوصا یه کلمه سنترا قلب می‌ذارن کمال این پیری از این, حرفی از این و حرفی از این و رو از اون و درست من فقط مثال ها، قطریم گاوقی از خون، از کی به هم برسیم و از اینا چقدر بعضی قبل از زواج رومانتیک هم؟ خیلی درسته؟ یعنی فکر می‌کنی که این زن اگر شوهر دار بشه اگر به اون عشقش رسید دیگه نزاره که خاره پای شوهرش بره درسته؟ بلی وقتی که به هم میرسن دیگه زن خودش میشه شه درسته؟ اون عشق اون علاقه اون آرزو اونو فراموش میتونه دیگه فراموش از این که یک روزی عشق داشته که به عشقش برسه به آرزوش برسه فراموش از این قضیه دیگه این از ذهنش میبره اون چیزی که تو ذهن خودش داشته پرورش داده منتظرش هم مونده سالهای سال منتظرش مونده دیگه وقتی که بهش میرسید یک قدرش رو نمیدون این فقط من که اون ما رو بیادش بیوفتی یه روزی الله بعد از اینکه اون معروف عقد و سید و نمیدونم یا خاصیگاری تو کسی اومد دیگه از این کارها خود به خود اصلا از از این قشربزونه خود به خود این یه قلبی هم از داخل میکشید برای خودتون این ها زیاد آدم میکشه تو زندگیش ولی یک اش این ها همینطور صاف پاک تمیز میمونه یعنی این قلب وقتی که وارد زندگی میشه این دو تا به هم دیگه میرسه دیگه این قلبی که داره پیون میخوره خدا میدونه که چقدر من بی‌نگره این دیگه زندگی به درد خوره دیگه این چه شوهریه این چه زندگیه خواهرم بهتره این مثلا بهتره این فقط من از باب تذکر بهتون آوردم یاداوری وظایف زن و شوهر بریم به اصل مطلبمون یا معشر النساء تقین الله ای زنان تقوی الله داشته باشید خطاب من نیست خطاب رسول الله بود جلسه گذشته گفتیم توقیر و احترام وقدت و الساق الباب وقد قميصه من دبر والفى سيدها اسم شوهر گفت خدا گذاشتش یادت اطاعت بانویی این از جمله بندهای وظایف زن بود یا حقوق شوهر یعنی حق شوهر در مقابل زنش زن چه این وظیفه ای در مقابل شوهر فاین فا اطعنکم فلا تذوا علیهن سمیره پس اگر شما را اطاعت کردن دیگر برای آنها هیچ راهی برای کسب نش یعنی اگر شما یعنی اگر زن‌ها اومدن اطاعت کردن دیگه راهی را برای فرزنش میتوییش دنبالش نگردی بحث اطاعت یعنی دیگه مرد دیگه وقتی که اطاعت یعنی زنش ازش اطاعت میکنه حرفشو گوش میده خصوصا با نیکی نه اینکه با اکراه دیگه اون مرد خود به خود دند میکنه دیگه اون موقع هست که باید اون مرد کوششو باز بکنه درکشو در مقابل زنش باز بکنه و در مقابل این طاعت, در مقابل این اطاعت از شوهر که اطاعت پروردگار ما گفتیم هدف از ازدواج اطاعت خداونده او طلب جننه و الارس الا ليعبدو مبدئاً دین ما معنی بکنیم هدف از این ازدواج شهوت نبوده هدف از این ازدواج نمیدونم عشق به عنوان اینکه عشق نمیدونم عشق شهوت شهوت بازی و شهوت رانی هست نبوده وسعتمون وصلت, وصلت شرعی بوده دینی بوده که و قبل تو هست این در ازدواج هست نه به قول معروف زنا و نمیدونم فاحشه و این مسائل بحث بحث شرع شرع اومد ماهار و بزدیگر حلال کرد قدرشو بدونیم چون پاداش این اطاعت پاداشش خیلی بالا هست یعنی درسته که سنگینه برای یک زن اطاعت از شوهر بکنه درسته که شاید ذلت هست велиكن رسول الله صلى الله عليه وسلم میفرماید إذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحفنت فرجها واطاعت بعلها اجزني نماد پنځکونه بکنه روزاشو بگیره مرتکب زنا نشه فاحشه نشه شوهرش اتو عذ دخلت من أي ابواب الجنه شاعت. الله اشرف فضله في هر ذره از ذرات بهش بخواد خدا مرد باید جمع بکن این قد صدقه بده این قدر نمیدونم ذکر ورد بخونه نمیدونم این قدر جهاز بکنه تا آخر بهش بگن بفرما از هر دنی بخواه وارد بهش بشه ولی زن در مقابل نماز روزه و این که مرتقب فاحشه نشه باید شوهر خیلی راحت چی به دست میاره درهای بهش دخلت من ای ابواب الجنت شاهد درهای بهش بهش باز میشه پاداشی بیشتر از این بالاتر از این مرد ها باید اینجا ا زنو اعتراض می کنین چرا مرد شوهر روز این داره توی بهش اون پاداش بلاتره یا این پاداش فقط از شوهر اطاعت بکنین نمازش بکنین بسر مغارض بهشو هر دری که خاصی؟ واقعا پاداش بزرگی چک نکنید پاداش تمیه دست فضله خدا به این اشخاص یه چیزی داده به اون اشخاصی هی داده ما هم نباید مرد و حسادت ببرزین فضیلت و منتی هست خدا سر زنو بزرگیه بله من تو این نوشتم اگر زنی از شوهرش بخاطر دینداری اطاعت کرد نه بخاطر بگه عشق، دنیا، ترس، مسلحه توقع ندسته باشه که شوهر ازتون سفاسگذری بکنه کارتون لله باشه کارتون لله باشه بعضی از زمان توقع دارن در مقابل اطاعتشون اگر مثلا اگر غذای کختن یا بچه شون تربیت کردن توقع دارن که بره براشون یک الانگو بخره، یک نمیدونم گردم بندی بخره. یا بچه بچه که, که اوورد مثلا به فرصه بعضی از اونا تووخو دارن که حالا شهرت بیاد سپاسگزاری بکنه یه چیزی کادو هم براش بگیره اگر کادو نگرفت یه گلی نایورد در جایش یا وایلا دیگه اون زن این خاطره بعد دیگه تا فراموش نمیکنه هی دیگه سردنش میاد تو نمیدونم این کارو نکردی برای من این کارو نکردی این کارو نکردی این کارو نگردی نگاه کنید انما نطعیمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شكورا یاد بگیریم از موسی علیه السلام وقتی که مصطفی را از اونی خدافند خودش داریه یعنی از ما نمیخواد در ازای نعمت من بذاره رو سر ما که ما بیام شو بشیم موسی یاد بگیر مندش وقت رو برداشت خاطر اون دو دو دختر رفت روشه و کنار چرا؟ تا اینکه شرمنده نشن اونا شوهرتون اگر خوبی کردید شرمنده نکنید اون کاری که انجام میدید لوجه الله باشه با خاطر خواهد خدا باشه این تو زن خودتون هم بیارید این اطاعت چیه اطاعت از پروردگاره نه اطاعت از شوهر خدا از من خواسته که من اینطوری باشم از جمله وظایف زن همسابی مثل قرآن نسائكم حرزا لكم زن کشدارن دیگه حالا هرچند که از این کشدار بودن خیلی از برداشتا میشه حالا بحث اهمیت به کش یک مسئله هست اون در بحث مردها بحثش خواهد آمد ولی که بحث اینه که یکی از یکی از مسائلی که در زندگی باید زیاد توجه داشت بحث همخوابی هست یعنی بعضی از دناشات اصلاً اهمیت نداره نه به لباسشون نه به نمیدونم به بوی بدنشون نه به و اون چیزایی که زن باید بدونه من اینجا نمی‌دونم که کلاس آرایشگری یا نمیدونم کلاس لباس را رو به زن‌ها یاد بدم من اینجا هم نیست ولی که بحث, بحث... اینی که یکی از چیزهایی که سبب شده اززواج مباح بشه فاحشش، زناش، جرم شدیدی داره در مقابلش اطاعتش، پاداش بزرگی هم داشته ازش گذشتید حال اگر زنی که این سبب از ازدواجش بوده یکی از اطباب که بحث و افتت و هست. هست نیمت هم بکنه، نخواست می شوهرش بخوابه اومد پشت داد اومد شوهر نیاز داره از بیرون اومده نیاز داره زن میاد با پرخاش با خشونت باش برکرد میکنه آماده هم نیست پشت داده بشه شوهرش حال حکم این زن چی از لازه شرعی؟ ایلا دعا رجل امرأته ایلا فراشه فابت فبات غضبان عليها غضبان عليها لعنتها ها حتى تصبح لعنت خدا نسیب اون زن میشه بقاطر چی؟ بقاطر ای که با شوهرش هم بسرین اگه کی سبب که اون شوهر رو به زنا، رو به فاحشه، رو به هزار تا منکر دیگه هم شو بیاره. خدا افتات طوغمنی نزومش گذاشته به خاطر طوغمنی، به خاطر اینی که جامعه محکم بمونه. جای دیگه رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام بفرمایا: والذي نفس بيات نفسي بيده ما من رجل يدعي امراته الى فراشي فتابا عليه الا كان الذي في السماء صاختا عليها حتى يرضى عنها. و الگی نفسی بیاده رسول قسم بیخورد قسم با آن کسی که جان من در دست اوست مردی از, از،, از زنش نمیخواهد که بیاد به فراش برای همبت سری و زن نمیخواهد نمیاد الا کن الگی فستما یعنی خدایی که بلی آسابان هاست ساخته یعنی خشگین بر اون زن تا اینکه شوهر راضی میشه یعنی خداوند رضایت خودشو در رضایت شوهر گذاشته هو و هوا جنتی که و ناروکی خشم خداوند طرفی تهدید به جهنم هم اینما هو جنتی که و ناروزی زنه جهنمت شوهره جهنمت و بهشت سه تا نکوهش بقاطر چی؟ به خاطر اینکه زن اهمیت به هم بستری نمیده اهمیت به اینی که یک کش باشه برای شوهرش این اهمیت بهش نمیده این بادش اهمیت دار فکر نکنید شرق این جوانه رو دردار نگرفته شرق به این مسائل اهمیت داده شر فقط نمیمده که تکییف بکنه به شما که بگید از شوهر فقط اطاعت بکنید خیر آداب زناشی هم به شما یاد داده این عبادت همان آراستگی همان کسب به رضایت شوهر با چی میخواد وسائل آرایش باشه که نمیدونم میخواد لباس خوب باشه اینها ها انما هو جنتك ونارك بهشتك جهنمتت شوهر مرزات شد خیلی بدی حالا فقره رزات شوهر در این صلا زن بهترین لباس پوشیده بهترین و کرده بعد میاد جلو شوهرش چه غادي می‌ودی با تون کوی میاد یک توری تو مثل بهتون بگم مثل یک قاتل و مجرم گلا یا دوزی مثل یک دست دوزی گرفته دست بند میخواد تو دستش بزنه بازفاسش میکنه بحث فخد بحث تحسین ظاهر نیست ظاهر رو عراسته بکنید. ولی زبانتون آراسته نباشه خدیجه چی گفت والله لا یخزیت الله امده چطور با شوهر اینکه لتصل اللحب اینکه تذن میاد مچ میکنه سفاس میکنه نمیدونم تعریف شوهرش میکنه چه زبانی داره چه تا داره رسول را فراموش نمی کنه سال عمرشه خدا بهش نه تا زن داده ولی که خدیجه را فراموش نمی کنه نه تا زن داره رسول الله رسول تا زن داشت ولی که خدیجه همه که تو قلبه بعد از مرگشه ولی که برافیقاش تر میزنه غذا میبره بره این, این علاقت با چی ساخته شد؟ با رستاره با رازی نگه داشتن شوهن پاداشش این ما هوا جنتی و کی. خدیجه یکی از زنان بهشتی هست که بعده بهشتی که زن خدیجه عایشه امول هم همه این چقدر تلاش میکرد بسیار را را رازی نگه به داره بعض زنان هستن اگر مثلا بهشون بگی مثلا این غیرت حرامه چرا تو غیرتی میشی یا چرا مثلا بهت برخورده یا تجسس نکن به موبالم نگاه نکن اون زنه دیگه از کوره در میره قاب دلیل به غیبت نکنی قیامت میکنه تو نمیخوای همدرد من باشی تو نمیخوای به حرف من بوش بدی ولی عایشه چیزی شخصی نبود عایشه در یک حرفی میزنه میشینه حالا اسخاهش یه طرف میاد نمیدونم نمیاد پای رسول الله بگه چرا با من داد میگه یک ماه محمد را سرزنش کرد ولی عایشه خودشو مقصر میدونه مقصر خودش بوده وقتی که بشخاب را شکن چیز خوبی نبود باش خواب رو شکون نباز به غیرتش برمی این کارو میکرد بعضی از زن میان کل نیکی های نه تار تمثال و رسلان را میگیرن میگن که زن ها رسل اینطوری این طوری بودن اون طوری بودن بعد اون نیکی ها که بیان الان تطبیق باشی بیدم که زندگیشون نبتا راموشی اگر کار بدیشون ها ازشون سرزد میان میگن چی؟ خوبی ها رو نمی گیرن تو زندگیش رو که تطبیق بدن ولی اگر بهشون یک کار خطایی سرزد غیرت بی ازش رو سرزد در صفحه شی این ازش سرزد نمید ازقایی بکنه میاد شوهر رو متهم میکنه کار رو به طلاح میکشنه میاد در دادگاه‌ها ها و خانواده و تک و تشکیرات به خاطر چی؟ به خاطر این چرا شوهر فلان حرفزه یا فلان کار رو کرده بعد میاد چی؟ می آقایان قصرو رو مصخار شکن رو شنو یک کار ولادین هم با احسان خدا گفت اونهایی که بنیکی پیروی کردن اونها بنیکی ازش رو پیروی میکنن نه اینکه یک کاری اشتباه پیغمبر که نبودن اونا معصوم که نبودن شما گرفتید که الا این کجا اشتباه کردن شما اون دیگه گیری اشتباه اون اشتباهه یعنی که رسول فرزنش میکنه نکوهش میکنه بحثی بحث مهمیه بس کسب روایت شوهر در مظهر و در کلام و در شهبت نه تنها تقدر لباس و اینا رسول الله صلی اللہ علیه و سلم سؤال میشن سوئل ای النسائی خیر فقال خیر النسائی من تسره یعنی کس بهترین زن که میگه زنی که شادی در دل شوهر میکره یعنی شوهر که میبینه پرواز میکنه یعنی تک میکنه فرشتی دنیا فقط خودش داره. این نبر یعنی چه یعنی اذا نظر یعنی خير النساء من تصور اذا نظر یعنی اگر مرد نگاهش کرد مرد دیگه احساس شادی شادی میکنه وقتی که نگاه بزنش میکنه و تطيع اذا امر بهترین زن اطاعت میکنه اگر بهش امر کنه و لا تقالفه في نفسها و مالها مخالفتا بهش نمیکنه در مالش و در نفس یعنی اگر دوست داشت که بره بیرون مسافرت نمیاد خراشوقی گره بیاد مثلا دیگه نه تو حق نداری تو زنه بچه تو میخوای رها بکنی تو میخوای با دستور علی خال نه نه ولا تخالفها یعنی دولت مخالفت بکنه خدیجه یادتون بر یادتون نده این مف رو ما از زندگی صحابه... صحابیات و این زنان بهشی میگیریم اینا مبشرات هستن به بهشت خصوصا خدیجه رضی الله عنها ما مالها نمیاد مثلا بعضی از زنان هستن اگر شوهر رفت به خاطرش کادوی خرید اسباب وسایل زندگی خرید کمتش کرد. دیگه اینقدر این بغض کینه ی شوهر رو به دل گرفته یا مادر شوهر مثل این که رو سرش اومده اینجا دارم میگم به چشم حوو نگاه خواهر شوهر میکنه خب چرا اینطوریه چرا به این دید انسان نگاه بکنه این اشتباهیه این مفروم اشتباهیه که انسان باید معالجش بکنه نباید شما بیایید برای مرد در مالش تصمیم گیری بکنید؟ تا این تکلیف بکنید اگر رضایت شوهرت میخواید. اگر میخوای طبق حدیث بعدی همون زنی که میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد میگه که من کوتاهی نداشتم در حق شوهرم بهش میگه فام دور عین انت من نگاه فقط تو کجا شوهرت انت انما هو جننتک و نارک شوهرت بهشت و جهنم است حالا میگن که بعضیا میگن که خب مادر پارسال صهرات ذکر بهمون دادن ما فرصال اشاره کردید باید یا هی میگن که بهش دیر پای مادرانه اما احادیتش به این صحت و ضعف بعضی رواتش حسنه بعضی رباتاش ضعیفه. دستشون در نکره کسانی که به من تذکر دادن ولی ایک این فراموش نکنید شوهرم همینطور انما هو جنتو تی و نارو تی باید بزاعتشو نگه بداری، باید رازش نگه بدارید چطور چون انسان تو زندگی شرقت داره که شوهر بیاد مزرعه قای شوهر بیاد پیش قدم بشه من همیشه این مثال پارسال این مثال رو توضیح دادم شما قلب رو می‌بینید دل از محبت میده آب نشانه نرمیه من پارسال این مطرح کردم بهتون گفتم سنگ تر یا آب آب آب چیش کاریه نرمیش رسول الله صلی الله علیه و سلم همین میگه ما رأیت من ناقفات عقل و دین اذهاب ولوب رجل حازم من کن ندیدم یک زن معقی عقل و دین باشه بیاد یک مرد با شخصیت تابی عقل تابی یک مرد با قبضه خودش بکنه چی؟ با, با نرمیش چطور نرمی زن خشگین دینه ناراحتی برای برود خوش نمیره شوهرش اشتباه کرده دست دستش بیزاره همونطور رسول الله میگه لام ذی طبرن حتّى ترضا شش نمی نمیبندم تو اینکه تو حدیثش غذاش رف زنه توانشو دارید قدرتشو دارید میتونید مرد عاجزه آب میتونه به سنگ و صخره تأثیر بذاره عشق داره با عمل با کردار نه با پیام فرستادن الله شما پیام بفرستید I love you، دوست دارم فداشم وقتی که این همه کلام سخنهای عشقامیست بفرستید و بگید بعد بیاد شوهر چهرهتون ابروهاتون تو هم کشیده ببینه تفکر داره شوهر بده دست در نکنه خانوم بیشه دارم فلانش فلان و فلان و فلان از این کلمات اشقامیزی بیا به خانمش بگه زن توقع داره که چیکار کنه؟ هر هم تو بهش بزنه، شوهر چکار میکنه موبایلش رو می‌گیره یه گوشه می‌نشینه با و رفیقاش حرف می‌زنه. مقصر کیه؟ مقصر زنه. حالا درست است شوهرانی شوهرانی مقصر باشن، مسئولیت زندگیشون خیلی زیاد باشه. حسین امثال مها که مسئولیتمون زیاده. من یه قصه جهلی بدون بگم. امام زهری خانومش میگه میگه والله لا ان كتبه لا اشد علی من ثلاثه ذرائر میگه کتابهای زهری امام زهری معروفه دیگه از ما میگه قسم میخورم کتابش از صد تا هرگز برام بدتره یعنی اگه صد تا حو بهتر بود این کتاب داشت یعنی سرش تو کتاب رفت دیگه هیچ حالیش نیست اسکش همش رم شوقت کتابشه نذار توافق گفتم این نکته بعضی از مردا اینطوری امن ولی خب شما عزیزه دارید که شوهر را نارنجید ناراضی نشنید این شرع ازتون خاطر خاطر موها نیست سپاس و تشکر لا ینظر الله الى مراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه خدا نگاه زنی نمیکنه که شکر از شوهرش نمی انتقاص نمیکنه برعکس کفو نعمت میکنه تو بدی تو فنا میتونی این ای و از لا تستغني اون انزال من بدون شوهر زندگی میکنه یعنی شما توقع داشته باشی یک زنی ازدواج میکنه کدوم ذره‌ای به طلاق خیلی کم شوهرش خیلی معتاد باشه مشروب کار باشه که بعد راضی بشه به طلاق خودش خیلی کمه زن راضی بشه به طلاق چرا چون باید بره خونه ی کی خونه پدرش یا برادرها یا پدر مادرش افت بده برادرش اونم زن برادرش او. دیگه هم بتره. دلیلش دیگه خاریه نمیشه تحمل کرد اون زن خودش تحمل بکنه زن برادرش تحمل نمیکند الا خیلی دیندار باشه هیچ زنی توقع می‌دارن نمیتونه بدونی شوهر لات استغنی عنه اون زنی که شوهرش میمیره چی میشه یکن فکر نکنم سختی برای زن مثل سختی موردنش شوهر باشه ولی خب یه سخیه هست با بالاتر از اون هست چی اگر گفتی تابو یادتان میاد میگن اگه شوهر بیمیره بهتر از اینه که سر من بیاره بعضی‌ها نه همشون. پس بحث شکر و لئن شکرتم نکم شکر که شما میکنید برای اینه که شوهر راضی بشه نیست برای که خدا راضی بشه خدا از منفاسته همونطور که رسول الله صلی الله علیه و از خودش نمیگه انه لا ينتفع الهواء بحث حرف سخنان رسول الله صلی الله علیه و فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ایمان ندارن تا اینکه تو حاکم یعنی حرف طرف رو را بپذیرید حرف من نیست نگاه خدا نگاه زنی نمی کنه که شکر نمی کنه سپاس نمی کنه جوارش نی خدا سپاس می که زن شکست شو گزارو سپاس خداست بگه حد فقط جزات الله خیر ممنون حجا این کلمه ممنون که سنگین نیست که. ممنون کلمات حداقل از دست بیاد به زبانش بیاره نینکه اون مرسک بکنه که این زنی که الان بره خونه دیگه غیر از میکوهش زنش چرا دیر امدی چرا فلان کردی پس پش رو از یاد نبرید بعضی زنها گفتم وزوز میکنن زیاد زندگیشون اینو سعی بکنی تو زندگی کوهش بدی رسول الله صلی اللہ علیه و بیفرمایان او ریتو النار فا ایده اکسر اهلها النساء جهنم وديدن بشترش جهنم بشتر جهنميون زمان الله أكبر زمان چرا يقفر قيل اي بالله كفر و قال يقفرنا العشير احسان ان كفران بكنا يعني عفران نيكيكي شوحات اش عش اشبات زندگي زنه زندگي زنه جوهري ويقفرنا لو أحسنت إلى إحداهن الدار يك دسر زندگي داري فلان،, فلان ورقش قد بدی یا فلان روز به زن گفتی دوست ندارم یا امروز نمیدونم آراسته نبودی فلان روز به من فلان حرف بزدی این دفتر این خاطر زندگی که پر از گله کل این دفتر زندگی درش بسته کل این خوبی ها زندگی خوبی که با هم داشتن اون یک قلم خط خوردگی را گرفتن زندگی تونی جاری نباشه يا فورنا لو احسنت إلى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا تتسيق بديه قالت ما رأيت منك خيرا قط تشخو بها دنيئا بعد الزنا ندر مقابل شوهر حتى در مقابل خدا الله عز يعني بعد الزنا يعني اجى بالمصيبه تو تشار بشان اونجا حدك زباني بيرو ميورن از كفران نعمت أي خدا شرا من خارو كردي شرا من اذليل كردي شرا من فلان كردي شرا ما ندونم نبي اين كار براسن نكردي اینو بدونید صفات زنان مؤمن نیست این صفات زنان جهنمیانه مازب باشید بر هزار باشید. بعد اجازه گرفتن از شوهر در روزی صلیبی رفتن از منزل. لا یحلل المقتی. انتسو مبز بزوجها شاهد الا بی اذنه. ولا تأذن في بيته الا بی اذنه. زن اجازه نداره. روزه بگیره شوهرشون از سبحان الله. روزه که حق خداوند روزه سنت و نفذ زن اجازه نداره که بگیره مگر شوهر روزی باشه عجب یعنی زن میخواد روزه خدا بگیره باید اجازه شوهر بگیره بله شاید بحث چیه همبستریه شاید شوهر نیاز داره که همسر بشه با شوهرش با شرع اومده این مسائل رو در نظر گرفته لا حل یعنی حلال نیست حرامه حرام اون روز روزه گرفتن سنت شوهر راضی نیست حالا یعنی زن میپورسه که آیا من برم رضایتش رو کس بکنم بگم بهش اجازه هست؟ نه شو از زن میدونن شوهرش روزا هم بتری نمیکنه و راضی روزه بگیره از فعل شوهرش میدونه لازم نیست یک اجازه بگیره که من روزه بگیرم یا نه بحث اینه که اگر شوهر ناراضی باشه خشم در اون زنه حلال نیست کارش حرامه ولا تأذن في بيته الا بذكه اجازه اجازه نده برادر منزلش بشه مگر باشه تا برادرش بشه خارج بشه. اگر شوهر راضی نیست نبازن اجازه بده حدیث عبدالله بن عمرو بن از رسول الله صلی الله علیه و آله اذا استذنت امراه امراه احدكم الى المسجد فلا يمنعها استأذنت زن میخواست بره مسجد نماز بخونه باید اجازه شوهر بگیره بيجرب. شوهر هم وظیفهشه اجازه بده ولی خب بعضی ما اجازه گرفته اجازه هست گفتم اگر اجازه بالفعل میدونید که یعنی شوهرت راضیه بری مشکلی نیست ولی بعضی از شوهرها هستن که حساسه اگر شوهرت حساسه مواظب باشید برو نروجید اجازه بس بگیرید که منجر به طلاق نشه جدایی نشه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ربادة رسولة صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والده و الله من ذبح لغير الله و الله من آوى محدثا و الله من غير من هذا أب رجل شاهدي كما نجاوه ورده و لعن الله من آوى محدثا محدث كناحكار و زن زان اتخنى شوهرش اتخنى فدر مو درش بقاتلشي بقاتل انت شوهر رفتی یا به مسافرت یا فلان کار انجام داده پاشه توی یک کفش کرده من به خونه نمیام پاشه توی یک کفش کرده من به خونه منزل نمیام این زن عاصیه و اون خانوادهش گناهکارن که اجازه دادن اون زن عاصیه پیششون بمونه خدا لعنت بکنه اون کسی که بیاد خدا لعنت بکنه اون کسی که بیاد این چنین کاری رو انجام بده خب بحث اینه که انسان خودش رو در لن وارد میکنه و خانوادش منجر میشه با کارش عدم اطاعت از شوهرش سبب میشه هم خودش هم خانوادش مورد لعن خدا بشن شوهر نیاز داره به اون زن اون زن رسید سونه پدر مادرش ملعونه چون چی؟ چون شوهرش رو تهکید و شوهر نیاز داره و خانوادش هم ملعونن چرا؟ چون به اون زن راه دادن لعن الله من آوه مخدیتر اجازه یادتون نره با. تو زندگی خیلی مهمه این چیزی که خدا خواسته از زنانه خلاصه اون چیزی که از خدا می زندگیتون زندگی تو زندگی باشه آرامش باشه آسایش باشه سکونت باشه چون خدا خذفت ازدواج با رو سکونت خواهده هو الگی خلق لکم هو الگی خلق من نفس موحیده و جعل منها زوجه لیشنا الهی که خدا زن و خلقت کرد که آدم تکیین بشه رفیق داشته باشه تو زندگی رفیق باشید با شوهرتون تو زندگی دوست باشید با شوهرتون سعی بکنید تنجره های غم خونه رو محکم ببندید غم تو خونه نیاد حرف دیگران رو تو خونه دخیل نکنید دخالت ندید همسایه این کارو کرد مادرت این کار را کرد ساحرت این کارو کرد حرف دیگران رو تو خونه نیارید خونه مال خودتونه هر پس خودتون بزنید توی اون خونه سعی بکنید پس لرزه‌ها و لرزه‌ها و زلزله‌ها تو خونه کاهش بدید از دعوا و تنش‌ها بکاهید آب خناتی بخورید از خدا دعا بکنید که خشم تو را خدا بخوابونه بعد از زنا بعد از مردم هم وقتی که عصبانی میشن دیگه میخوان اون بغضش خالی بکنن دیگه با شکوندن با نمیدونم پرخاش کردن با کتک زدن این خونه نیست این منزل نیست منزل خدا قرار داده که توی اون بارون نیاد آب نیاد توی اون گرد و خواب نیاد توی اون خونه شب راحت بخوابن سرما نیاد این یه، این سکنه همونطور که شب سکونت آرامشه خداوند درباره شب میگه شب سکونته در باره منزل میگه مسکنه و در باره زنم میگه سکنه. حال اون زنی که پرخاش میکنه، داد و بیداد میکنه، آسایش را از خونش سلب میکنه، داد و بیداد و فریاد راه میندازه به نظر شما، اون خونه سکنه، اون دیگه خونه سکن نیست. اون آسایش راه نیست. اون محل آسایش نیست. اون تیمارستانه. اون خونه دیگه نیست که منزلی نیست که آدم راحت باشه که شب بخوابه توش تیمارستانه دیگه داد و بیداد آدم دیوانه پرپاش میکنه داد و بیداد عصبانیت اون نمیدونم در رو از این طرف میزنه به دیوار ذرفای از طرف دیگر میزنه اتبایت خوش رو زرف پالی میکنه رو بچه, میکنه. بچه رو کتک میکنه این زندگی نیست اون زنی که خونش مرتب نکنه زندگی نداره. میاد توی خونه مرد وارد میشه ظرف ها یه طرف ریختن بالش تا یه طرف نمیدونم نون خوردن ریختن سفره یه طرف چی زندگیه؟ این زندگی بهش میگن این آرامش بهش میگن این آسایش بهش میگن بوی خانه خدا میدونه چه بوی میاد بوی غذا بوی... زندگی اینطوری نیست رسول صلی اللہ علیه وسلم میترم حب به علی من دنیا که مطیب و نسا دو, دو دنیا برای من خدا تو دلم حب حبش حبشه گذاشته یکی زن یکی بوی خوش این مرد همش همینا توی ذهنش و فقط همیشه یا به فکر زنن یا به فکر تمیزی و خوشبوئی و نمیدونم این مسائل همیشه دنبال نمیدونم طلام باغ دارم به گردش یک درختی استعاری ببینم زندگی رو با نه تنها آراستگی خودمون حتی منزل ببخشید که من یعنی در کنار اون مسائل شرعی مسائل زندگی رو هم میگم. از بحث اهمیت خدا وقتی که میگه که سکنه این مظهر سکنه غذا باید به وقتی تو خونه آماده باشه مظهر یه خونه این آسایش خونه هست منزله بچه وقتی که شوهر میاد بچه... نهی که خود خودش نشسته یک ساعت ده تا قلم آرایش به ابرو و به تلکش و به نمیدونم همه جاش کشیده اون بچه بچهش اگر ببینی فکر میکنی این بچه بچه از از خیمگاه های سهرا و بیابون اومده اون پدره میخواد آغوش بگیره بوی بچه بوی موهاش بوی نمیدونم میخواد بچه‌شو شو ببوسه دلش نمیشه بچه شو ببوسه از بس که بوی بد میده یا بوی غذا میده اینو تو ذهنتون باشه باید بهش اهمیت بدید شر اومده این مسائل اگر بهتون مسال میزنه بحث منزله زیبای منزل به اینه زیبای منزل به اون خونه هزار متریه زیلای دو نیست آرایش خونه رفتار شماست شوهر میبینه کاری بکنید مثل خدیجه شوهرتون شرمندتون بشه همیشه بیادتون باشه حتی پس از مرگتون سه شخصت سن الله صلی الله علیه وسلم خدا نگاهشون نمی کنه سلاثتون لن یندر الله عز وجل یوم القیامه العاق قل و المترجله ودیو سه شخص خدا نمی نمیکنه کسی که عقوق والدین میکنه با پدر و مادرش بدبر با کرد میکنه خدا نمی نمیکنه شیخ نکوهشی که وعیدیم رفتارتون با پدر و مادرتون خوب بکنید اصلاح بکنید و المرأة المترجله که مثل مرداست زن ولی کاش که بره بیرون بعث وسایل خونه تهیه بکنه بعضی از مردا اینجا تو جامعه خودمون آرزو دارن زنش گوینامه رو بگیره خود برو بخره خودش میره خرید میکنه سیب زمینی نمیدونن وسایل خونه لباس زنش شده مرد زندگی من وظیفه زن نیست وظیفه ذاتی نیست وظیفه زن نیست که مرد باشه نه در رفتارش سخن گفتنش خندفتنش بعضی از مرد سخن میگن. خدا وقتی گفته صلاتک و عن بالقول بن با نرمی صحبت نکنید با محرم یعنی با محرمتون با شوهرتون با طوری صحبت بکنید با اون که حلال است نماز مشکل داره خضوع در قول نه مشکل نیست باقی مشکل داره بنامحرم. با محرم با که محرمتون نیست اما با شوهرتون نیست خضوع در قول با نرمی صحبت حالا بعضی زنه شاید بگه خب ما نیست بل خیلی چیز سر انسان نیست خیلی چیزا مگر مگر اون چیزهایی که در شر بهمون گفته مثلا غیبت نکنید دروغ نگی مگر مگر انسان نمیخواد حرف بزنه غیبت بکنه میگه حرف دلشو بزنید همون دست به حرف دلمون بزنی ولی چون خدا گفته حرف دلت رو نزن نمی‌ذاریم فلانی بدی بهم کرده کردی بزنم بگم فلانی بهم این کار کرده این گفته اون گفته نه نباید طوری باشه شر اومد جلوی من گرفته گفتم حالا شاید نمره 10 رو ولی هست، نو، پنج، شیست تا, تلق... تا میتونیم حد درقل اجرا رو بکنیم تو زندگی خودمون تا جایی که میتونیم تا جایی که میتونیم رفتارمون رو تحسین بکنیم خوب صحبت بکنیم، لازم اینکه نرد مثل بگر بعض از زنو عمزن صداشو نازک میکنن، نر میکنن دیگه نه اونطوری هم نباشید که دیگه بکنم معروف شل حرف بذارید منظور احترام باشد تو حرفتون تقدیر باشه تو حرفتون، شک باشه تو حرفتون، خوبی باشه تو حرفتون، حرفتون مردانگی نباشه. ای من خدا رفتی کجا اومدی؟ مثل پدر که با فرزندش برکن میکنه چرا دیر اومدی؟ دیر از مدرسه اومدی؟ این رفتار، رفتار مردونه است، رفتار زن نیست. این زن مترجعه در لباس هم همینطور. یعنی خدا نگاه اون زن نمی کنه که در لباسش مثل مرده. شلوار پوشیده جین، نمیدونم تیشرت پوشیده افتخارم میکنه که مثل مرد ها شده. موهاش هم شده مثل مردها. خب هیچ مرد چه لذتی ببره نگاه این زن بکنه؟ خب چه فرقی کرد با اون مردایی که تو خیابون میبره و اون زنی که تو کوچه کوهام میبره؟ این گفتم چه در مظهر اخلاق و چه در مظهر شکل و قیافه. مظهر زن باید زن باشه نه مرد. حرف که زنونه باشه با شوهرش نه مردونه. اینو باید بدونید. و دی یو هم که اون اون که محارم شوزن و قاهرش رو میتروش برای دیگران یه حرف و سخن من از این نیست وظایف شوهر وظایف شوهر رو امشب تمام میکنیم تا اینکه ان شاءالله بحث بحث بره دیگه به یک جلسه یا دو جلته نمیدریم الله خدا هر چقدر توفیق بوده. مشکلات زندگیم رو چطور حل بکنیم راهکارها و چارها ها برای زندگی انشالله شاءالله ردیگه چه بعد وظایف شوهر که شما منتظرش بودید خب این مردا این مردا چه وظایفی دارن چه خود در ما هم با بدونیم دیگه بالاخره خیلی ها میخوان بدونن که شوهرشون چه وظایفی داره گوشمالیش بکنن یک گوش شوهرتون دیگه از این موقع به بعد دیگه باید بگیرید بله خب نصف بدی کی نه اینکه نه اینکه سرتن کوش و فرزندش نه نصف با حدیثی با حرف سخنی نیک سعی بکنید اصلاح بکنید رسول الله صلی الله علیه و وسلم احرج و حق الرعیفین الیتیم والمرأح احرج یعنی اشدت احرج یعنی من تحریم میکنم احرج یعنی سخت میگرم برات تون مردات دارم به تندی بهتون میگم یعنی حق دوشت زن که اثیره بهتون و یتیم احرج یعنی من به سختی دارم بهتون میگم مرد باید بدونه وزیفه در مقابل زنش تنگینه چه بزایفی داره که تنگینه اي قسمتش مهره وآتوا النساء صدقاتهنه نحله مهر زنه بده خصوصاً اگر بحث شقاق بشه اي اعلام طلاق بشه خصوصاً باید مرد فما به منهن فآتوهن أجورهن فريضا این اجره كي خدا بذاشته يعني این فاداشه كي خدا برای زن بذاشته مهر باید باید اون مرد بده فردخ بکنه بزنش بزیفه ما نباید مرد خوششو بعد از مردم میخوان جدا بشن به زنشو فشار میاره که زن خودش کنار بره خل بکنه تا اینکه که چی؟ تا مهر بگه نیفته مهر حق زنه و وزیفه مردم فرداخ بکنه نباید تلاش بکنه که زن بزش بکنه از این حال نفقه وعلى المولود له رزقهن و کسوتهنه بالمعروف لا تکلف نفس ایلا وسا مهر در حق بسعش خدا بهش بدشیداد وز وسائل بخونی بکره لباس بچه‌هاش بگره رزق و هون و کسبت هون این وظیفه مرد وظیفه است واجبه وظیفه‌اش است که این کار رو بکنه و هم تک رسول الله صلی الله علیه و آله فرنه احرج علیکم یعنی من به توندی دارم بهتون میگم رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیث حدیث در حدیث معاويه بن حیده رضی الله عنه قال قلت یا رسول ما حق زوجتي احد علیه حق يجزان بجادة الموتية قال أن تطعيمها إذا طعيمت اگر كان غزاء خاصة وذيثية ماردك بده. وتكسوها لباس خاصة وذيثية ماردك لباس غزاء ولا تضرب الواج ما هو السوريات نزال ولا, ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ولا تقبح نقول بذنك حديب فوش بيش نده نبع خطاق زدن مثل هيوون زدن و شرم مشخصیه ده بعضی ها وقتی کتک میزنن به زناشو یعنی آدم اینطوری که بعضا میبینید که مثلا به زناشو میزنن خدا راه بکنه یعنی اون شطربان اون سرار فکر نکنم این کتک یا اون کسی که برده یا اون, شا... اون جلاد فکر نکنم میتونی کتکی به زندان... اون زندانیان خودش بزنه مثل اینکه که یک مجرم رو گرفتن اینقدر اون زنشو کتک میزنه شو طول لقت از ای طرف زنشو بره این طرف آبروی این مسئله شرق، اینجا رسولا صلی الله علیه وسلم به سختی و به شدت داره به مرد گوشدت میکنه مرد باید اگر این کاری ازش ترزده توبه بکنه این توبه نسوح می خواد حق مظلومه و روز قیامت اون زن بدونه اگر کتکی خورد، کتک به غیر حق بدونه که اون، حقش و خداوند در نزد قیامت می‌گردد. اکثرون امل قال فينا من و الديار. اصلات رسولان المفلس، صحابه غضب المفلس قال المفلس من امة من یاتی يوم القيامة باحسنات كالجبال. مفلس امة من کسی باحسنات مثل کوه وقد و هذا، و هذا، و سفک هذا. فوش فين داده، هذا من حسناته وهذا من حسناته. این از حسنات نیکش میگیره اون از حسنات نیکش میگیره چرا کتک زده چرا بدو بیرا گفته تا جایی که خداون گناهان اونا رو میگیره کافه... حسناتش که تمام میشه تو کفه ترازه شده او را جهنمی میکنه پاداش اون, اون جزای اون شوهر چیه جهنم خدا باید بسوزه چرا چون زنشو را زده بدونید خدا حق شما را میگیره عجله نکنید که حقتون را بگیری حجرا مگر مرد میخواد بکنه نباید بره یک ماه به مسافرت میخوای حج بکنید حج در منزل بواد بکنید این از وظایف مرده از وظایف مرد سکنه مرد وظیفشه برای زنش خونه بگیره یک اتاقی حداقل وظیفشه اسكنهن من حيث سکنتم من وجدكم وظیفه مردی که خونه به محل سکونت برای زن هرچه که بحث بحث زن مطلقه اگر بچه داره وظیفشه که خونه برای اون بچهش تهیه بکنه آلا این زنی که تلاف گرفته وزیفه شه چه برسه؟ به زن خودش وزیفه که اون مرد بره زحمت بکشه تلاش بکنه خونه را برای زنش مهیا بکنه وظائف شوهر همونطور که مرد زن حق داشت مردم حق داره مردم نباید زنش میخواست همونطور که زن تواقع داره همون تو مرد تواقع داره زنش باش همقابی بکنه زنم همون تو تواقع داره شوهرش باش همقابی بکنه قصه عبدالله بن عام میبینید قال انتحنی ابي امرأتا ذات حسبه پدرم بمن زنی دار بانتابی فتان یتعاهدو کننته ای زوج زوج الولد منظور که هميشه متعاهد بود زن فرزندش فيسألها عن بعدها سؤال ميقرف از اون شوهرش شوهرت شكوره فتقول نعم الرجل من رجل يعني مرد خوبية لا مشكلش في جاس لم لنا فراشا بمن هم خبيرة بيكر ولم يفؤتش لنا كنفا منذ أتيناه كنعيهات يعني هیچ وقت با من همبستری نکرده در این مدت فلما طال ذلك علیه ذکر النبی تص قال به فلق،, فلق،, فلق فلقیته بعده فقال كيف تسوم تا اخر روایت که رسول الله صلی الله علیه و سلم به فرزندش میتونه نکوش میکنه میگن این زن حق داره دلایل بکنه شوهرش باهاش همخوابی نمیکنه پشت بهش میخوابه اهمیت به هم همخوابی نمیده حالا اون مرد مریض نمیتونه مسئله دیگره. اوزلی که خدا بهش داده. ولی که عذ نداره، عذ نداره. فقط از باب تنبیه این کارو با همسرش میکنه. مد حق نداره این تنبیه رو بیشتر از روز ادامه بده. میخواد حج بکنه وقت داره برای خودش مهلت داره نه اینکه دیگه مطلقا پشت بده. الله میخواد یک ماه، شاید یک ماه طول بکشه هم دکر رسول الله این کارو کردن، حج کردن، یک ماه توی مسجد خوابیدن. زمانش بر... در ایزای اون حرفی سخنی که زدن وقتی که رسولات چرا اصل خوده چرا قضا پیشه چرا همبستری کرده با کنیزش این حرفی رو رس زدن رسولات اصلا راحت شد و بعد یک ماه زنانش رو تر کرد یک ماه توی مسجد خواهی یه حضب تنبیه بود ولیکن دیگه مرد دیگه هر چیز حد و حدودی داره زینب را سه ماه تنبیه کرد حد و حساب داره بعد مرد یا اون زن بره دنبالش که چرا مردش نمیخواد باش همخوابی بکنه باید مشکل و حل بکنه نه که بیاد ابرو بکنه بیاین اون بگه خودش خبسته من قبلا تو کرد دارم نره بفدر مادرش میگه بیه کسی به بشه عالمی بیه کسی بیه که نفیهتش بکنه اگر این کار کرد این از حقوق از نه حدیث ابی جعفر در قال آخان نبی سلمان و ابی دردآ فزار سلمان و ابو دردآ فرآؤم دردآ متبذلا فقلا ما شأن رسول الله صلی الله علیه و آله او قوت میده بین سلمان و ابو الدرداء سلمان روزی میره به زیارت ابو الدرداء ام الدرداء رو میبینه زنه میبینه با لباسی خیلی متواضع یعنی لباس کهنه فقال ما شانك ترى ان تريد لباسك قد کهنه شده هستی قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجه فی الدنیا این از دنیا چیز نمیخواد بعد میاد الله سلمان نتیحتش میکنه و سرزنشش میکنه ندوشش میکنه رسول الله صلی الله علیه و رسوله به می میرسید به لباسش همکاری می تو خونه تو پختن غذا با همسرش حقوق زنه باید من بدونه رفتار نیک احترام اهتمام به احساس تقدیر تشویق امنیت معنوی آتفه نه ی قلم چند تا قلم په شیش قلم بود این همه در این قلمه خدا نهو تد و عاش بالمعروف این هم نیکیه احترام حرمت زنه نگه قسم جلو بچه هاش اهمیت بهش بده اون خاصه هاشو برای برده بکنه لباسی میخواد چیزی میخواد تقدیر و تشکر بکنه در مقابل اون خوبیهاش تشویقش بکنه بهش امنیت بده امنیت عاطفی معنوی رسول الله صلی اللہ علیه وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسن هم خلقا بهترین مؤمنین از لحاظ ایمانی چه کسانی هم اونایی که اخلاقشون بالاتره و خیارکم خیارکم لنسائی خل خوش رفتاترین نسبت به کیه؟ به همسارانشون یعنی بالاترین عبادت یکی از برام من با کسی که اخلاقش نیکی اینطوری تو بهشتیم بالاترین خوشرویی خوش, خوش برخوردی خوش اخلاقی با کیه؟ اون چیزی که سبب میشه اینطوری انسان بشه با رسولات واسم در بهشتیه خوب بودن خوش اخلاق بودن با همسر. ای مرد میای وارد منزل میشی اونوی که تو این دوربین. و از این فیلم برسه به دستشون اون مردایی که میشنونن خوش اخلاق باشن خوش پرورد باشن غم زندگیشون غم کارشون غم خستگی درد کمرشون اونو بذارن توی یک صندوقی بیرون از خونه بعد وارد خونه بشن غمش رو فراموش بکنن در حد توان لا يكلف الله نفسا الا وسعها در حد توان ولكن فتق الله ما استطعتم ای مردان از خدا بترسید در حد توان یعنی تا جایی که میتونید مرد وظیفه یی که وظیفه‌اش تا جایی که میتونه تقوای خدا رو داشته باشه تا جایی که می‌تونید با زنه تو برزیل میگه بذارید خواسته‌اش را برآورده بکنید تا جایی که میتونید فقط الله اما استطاعت تا جایی که می‌تونید تا, تا جایی که میتونه مرد باید اخلاقش رو خوب بکنه واجبه اگر این کارو نکرد خلاف امر رسول الله عمل کرده و باید توبیخ بشه در ازای اون بد رفتارش از حقوقه زن که بگردانه شوهره و زیتوی شوهر صبر و تحمل در مقابل بدیت می‌بینه. فاین کاریه تو مون هنر فعسه انتکرو الله في خيرا كثير. چه اخلاق بری از زنان تو از هر کسی شاید این چیزی بود بعد بشه. شاید در چیز بعد خیلی خوبیها وشند. رسول الله علیه و سلم فرم: استرخی بالنساء، فإن المرأة خلقت من ظلم. زن از سخون خرد کچ خلقت شده استوسو یعنی داره توصیه میکنه و سلاسان و آسلان یعنی با انها با نیکی برخوره بکنی زن اینطوری خدا خلقش کرده یعنی توقع نداشته باشه که زن کامل فرشته توی خونتون باشه شادشته باید سر بزنه. و این اعویشه فی فضل اعلا و بالاترین کجی بالاشه اون غیرت شهرات منظور شاید باشه که یه چیزی که قابل نیست تاذهبت تو قی مووه که سرته اگر بخواید درست شروع کی کیمتون غیت زنش رو درست بکن عید بهگ حالا منزنمون راضی نگه نمیدارم برام زن دیگه رو سرش بیارم يعني برم حال آزن رو راضی بکنم که الله حقوق رو سرش بیارم. نمیتونی اللا که فشار بیاری آخر منجر به طلاق باشه. هیچ زنی راجه نمیشهنی تبعش اددیعات می تجیه بعد از مها فشار بیان روزانهش که نه باید منزن دیگه بگم باید تو رااضی باشی نه اینطوری نیست. میخوایگیری. چقرو چیز نکن جلوی زن بعد از مردها هستن ورد زبونتو من زن میگیرم من زن میگیرم رسول الله صلی الله علیه و آله میگه وقتی که شخصی رادیک چقرو چیز میکنی جلوی حیوان میگه گفت که میخوای دوبار بار سرشو ببری بنده خدا چقرو جلویش چیز نکنین چقرو بیرون چیز کن بعد بیا سرشو ببر. حالا حقوق میخواد بذاری چقرو هم چیز بدونین من زن میگیرم زن میگیرم حالا بعضی زنا اشتباه میکنن زنا بعدش خودشا سر میکنن تو قسم به دیگه نمیگیری تو نمیدونم تا حدود و جهتونمی دانم فرمان بکن بچه زنان هستن خودشون وسوسه می کنن آنو اینی که به مردشون شون تو فشرد می از بس که میگن میاد نکن نکن نکن نکن نکن بچه کجاستشون متمام هم هم بکنی بشوید نکن نکن نکن بی میشه چهار می کنن رسول تو وقت نمی گف نکن زد از بس که وسوسه هست ایش که تونو وسوسه خنده ات فکرش همش غمش آسایشش رو از بین برده که شاید الله این شوهر را زن دیگه می اینو خواهشم تو ذهنتون علاج بدید درمان بدید به خدا پناه ببرید نیایی این کارو نکنید زندگیتونو خراب نکنید همونطور که زن اصلاح نمیشه مردم اصلاح نمیشه بذل از چیزاش توکل دارید که مرد شما رو خورد نکنه شما هم رو خورد نکنید بلی خب توصیه مردان فاین ذهب تا و کثرته و ان ترکته لم یزل اعوج پس توصو بنسا بذار ولی اس همونطور همون تو میمونه خب بالا راستش بکنیم راستش نکنیم بله به نیتی باش حرف بزن سعی بکن به زنده رس بکنی بذات توقع دارن زندگیشون سال اول فرشته بشه اون زن بهترین زندگی براش مهیا بکنه خیر علم و بالتعلم علم اب مختنمو باید دنبالش باشیم من که اینجا میام صحبت میکنم کتاب غربی ها میخونم کتاب مسلمان ها میخونم خب دنبال فرهنگت من باید یاد بگیرم که چجوری با همسرم برخورد بکنم چجوری زندگی با زنم باشم زنم هم, هم یاد بگیره متأسفانه مرد اصلا اهمیت نمیدن به این قضیه اصلا اهمیت نمیدن به زندگیشون حدیث شما انجا دارید نموهای اتفر رسول الله صلی علیه اینکه مردا علگگیری بکنن مهمتون که زنان رسول الله صلی مثال دادیم برای علگگیری اینجا خود رسول الله داریم برای علگگیری مرد همطور که زنتها قدر إنك مثل أمهات المؤمنين بشرتها قدر ما عدنا مع مثلها بشرت كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام يقبش قبي فرسات ويش غزابد فضربت التي عند النبي في بيتها يد الخادم فسقطت الصفحة وإن ذنيك بود نزل رسلنا عائشة مذاب يقبش قبي شكون فجمع النبي صلی الله عليه وسلم في القصهطه يعني اون بشاط تیکی تیکی شد رسول مستور کنه راه هم گذشت ثم جعل یجمع فيها طم غذا خوش بود آب خوش نبودید غذای حتما خوشی بودی که خژنش کرده تیکی بشاط الذي كان تصو يقول غاره امكم مدره ام بغله اشباط دیوکان اون نیست حاجت سخت حاجت تحملی یک زن بیا جلو مهمون شرمنده اش بکنه امتی قشرمون شرمنده بشه بعد بیاد این یعنی خشم خودش و غذاب خودش رو مخابونه. خیلی واقعا مهارت میخواد واقعا خیر البشر، واقعا سید المرسلینه که تونسته یعنی واقعا نه زن اداره بکنه واقعا هنره آن. چطور نه حبوغ با هم برن حج تواف بکنن و بعد بر بگردن همه هم صالح نه این مکر بکنه نه امت بکنه واقعا هنره هنر زندگیه هنر تحمله که ماها مردم متاسفانه نداریم خدا ما رو اصلاح بکنه یعنی هی میگیم که سنت اجرا که ریش بذاریم قرآن منقطه باشه میدونن نماز رو به وقت بکنیم تو مسجد رو خیلی مردم اهمیت میدن ولی وقتی که وارد خونی میشن از قرآن هم بتره اون صدا آرزو داره کیمات این شوهرش بیمیره از بس بد اخلاق بحث هست، از بس بی‌صبر بی, بی است بچه را از این بر کتک میزنه زنش را از این بر کتک میزنه هم بچه هاش هم زنش اروزی مرگشو دارن محافظت از زن غیرت در برقبالش حجاب، لباس، صحبت، نماز، طاعت مهمه بعضی از مردا این طب بیغیرد، سوس، بیهوییت بی احتاس، زنشون چادرشون گذاشته اینجا چادر نازک بشیده جوراب هم نکوشیده پاهاش هم بیرون عورتش بیرون عورت دیگه دستاش هم آسین کتاب کتاب پوشیده دستاش هم تا اینجا بیرون قلنگروهاش از یه طرف سلقا بارایش و ماتیک از طرف دیگر چی میخوای زن تو عرضه بکنه به هم باش هم همبسری بکنن این چه غیرتیه این چه مردانیه واقعا زشته واقعا نمیگه مرد اینقدر هویت باشه که به زن زناتوری شده اگر شوهرش بهشون بگه مواظب حجابت باش چی میگن میگه, میگه دل بده دلش بده دلبدیشتو وبی نداره دلبدش فلانه پیکی کلمه دلبدی کیشمش بده دلش بده نمیرا فلانش اینطوریه چرا چرا به بر میخوره باهم چرا به بر میخوره استادت بهت میگه پدرت بهت میگه شرع خداست دین خداست وظیفه مرد که اصلاح بکنه این دیگه تو بقول معروف تيجي شوخيش تجنيسها وغيرة الله أن توت محارمها خدابك خش مش بغيرتك بارم يقول أجر حرام عن يوم بشه ما من عبد سرعه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة اگر من بنوان بدار در مقابلة من شهار إن بذير خوب أداءنا كنا در مقابل دكتورنا حجاب تسرشبكنا جراب تباشبكنا دار مقابلة همسنا سيف إن ما من عبد للسرعان شم راعيها في كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته شم راعيها في اي مرضون بايت بخانمت بيجي نماض بخونه بايت بخانمت يغلط نكون بايت بخانمت بيجي حرام انجام نده راعي المسلم مسؤوله روز قيامات اذا ان روز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سائل الله كل راع عما سرعان احفظ ان خدا روز قیامت یعنی سوال میگرسه درباره رویی اون شخص خانوادهش اش احفظه امضیه خجششون کرد سترشون کرد یا اینکه نه بعد برسون عمرد رهاشون کرد اهمیت لباسشون حجابشون نداد حتی یکساله رجل عن اهل بیت تو اینکه مرد سوال بشه مرد یعنی تأکید داره میکنه مرد سوال میشه درباره خانواده نماز زنه، نماز بچه سوال میشه روز قیامت وظیفه ای مرد. در مقابل حجاب، لباس، در مقابل صحبت و نماز و طاعت نباید بذار مرزنش با نامحرم صحبت بکنه باید غرتش بر بخوره چی مردان نگی از زن راحت با این نامحرم، اون نامحرم صحبت میکنه خود در قرآن میده ولا تبرج نتبرج الجاهلیه، تبرج جاهلیت نداشته وشی یعنی چی؟ یعنی مثل زنان مشرکی نوشی جاهلیت نوشی تبرج، تبرجن ای آرایش، زینت با آرایش بیرون ندید، آرایش تو بزاری تو خونه برای شوهر تو مثل زن ها که بیرون بیرون میسیدی که برای دیگران دارن قلس آرایش میکنن ملعون اون زن، زنی که عط میزنه بیرون میره ملعونه زنی که حجابش رو مراعاد نمی کنه، عورتش بیرون میشه، موهاش بیرون میشه ملعونه میخواد چه پاش باشه چه میخواد دستانش باشه زن ملعونه مرد راعی هست وزیفه چه که باید به زن پوشش بده بهش بگه باید خفزش بکنه خدا داره من میکنه اینکه مرد مرد خدایی نکرده بیاد خانوادهش رو ترد بکنه هرچون که دلش خواست انجام بدن زن بره بیرون بخره خرید و فروش بکنه میگه خدا من در قرآن نمیگه بقیر نفی بیوتو کن در خونه بنشین جا خونه بنشین باشه تا تو که توصی می زنان مسجد نمی تا حتی حته میگه تو منزل بشینید نماز زن تو خونه بهتره تو منصب خوندن تو خونه بهتر از تو مسجد وقارن که جای زن خونه توی بازار از این مغازه به اون مقاد با اینا این محراب این چنده اون چنده اینو بیار اون بیاد پیرامو میذاره روی سینش میذاره که و قواره هست نیست چیزشتی چه چی نمگی بالاتر از این که زن نه نه حیا و چند تا ناز و کرشمه از این و خنده ای از این و البته شاید اون مرد اون جهسته پایین دورت من یه چلنوازاتم بیشتر از حضرت ما بکنه خیلی وقت از این خلاف شهر خداونده خلاف خواسته خداونده مفقود سر اینجا پیش خداوند بازاره ابغض الله ابضل بقا و مکان پیش خداوند اسواق بازارهاست بازاری داشید اهل بازار نباشین وقربتین می در که تخونت می جاتون خونتونه میید حاجتی نیا دارید بیید حیاتو انجام میدید که سری بیاد بینون، مبعوث اینجا هست سر نامحرم بهتون میخوره چشم نامحرم بهتون میخوره چون تون تو خونه باشه زنان الصحابیا شما یاد بگیرین آیتی اونها ام المؤمنین میته ما وقتی از زمان صبح منسرفی نماز صبح تاریخ کسی الله الله به زور بغل دست بینش یخرج ممنون متلاعات بمروتن مثل وقتی آدم دور زنها وقتی که خارج میشودن از از مسجد خودشون رو میتویشوندن. در خواستی که چش مرد بهشون نخوره. درسته که دیواری ده بود. چون اصفر بسارهشون نداشتن. ولی در جداگونه بود. همی که نماز تمام میشود سورن بیرون مینفتن. چش مرد بهشون نمیخوره. خودشون رو میتویشوندن. مثل پتو. این تمال حجاب. تمال خشنت. تمال فقدامنی. تم خیلی برادر عزیز نمیگاد ام المؤمنین ام مادر تمامه مؤمنان هست ولی نباید هیچو نامحرم بهش بخوره خیلی بحث تو این نیست زن باید اینو مراعات بکنه ولی متاسفانه اینجوری نیست و مرد هم متاسفانه بعد از اون هیچ اهمیتی نمیده به این قضیه وظیفه ی وظیفه مرد تعلیم زنشه ادب آموزشه اذا ادب الرجل امته فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها كان له اجران بحث تعذيب مردی اجر کنیز خود تربیت کرد خوب اخلاق بهش یاد داد دینداری بهش یاد داد سپس اذنش کرد واش ازدواج کرد دو تا که داره حالا بحثمون بحث کنیز بحث ازدواجی بحث, بحث تعلیمه وظیفه مرد آموزش زنه بهش آموزش بده داشت بشینه حرف بزنه حدیثی آیه ای از قرآن داشته باشه خلاصه آخرین وجیته متعقوای خداوند تتقوا الله في النساء ايما مردان تقوى خدا در زنا داشته باشید فانكم اخذتموهن بامان الله خدا با امان در اختیارتون گذاشته در امان بادت باشن این زنان اینها بردگانی دي شما هستند و فروجهون به بكلمه الله با یک کلمه حلال شده اون زنا براتون ولتم علیهن الا یطئن فرجکم تو و بخیه که حق زنا هست زنا هم کسی نداره تو کنهشون بیاتت آخر بحث بحث اینه که مردها باید تقوای خداوند در زنا داشته باشن بعد دیگه ان شاء میریم به آداب زناشویی که مشترک هست دیگه ان شاء الله به جلسات بعد میذاریم به ان نمیدونم یک جلسه یا دو جلسه, جلسه دیگه سبحان الله والحمد لله والصلاه الله محمد و محمد